استاد کیست؟ احساس حضور آن اهل تبت در خلال ساعات بعد از غروب هرچه بیشتر قوت می‌گرفت و همواره بر یقینم افزوده می‌شد که او آنجا بود با این وجود نمی او را ببینم پس از مدتی آغاز به تجسم نمود و صدای آشنایش سخنگفتن آغاز کرد تارس. باید فورا مشغول شوم. لطفا بیش از این عقب نشینی نکن حاضری؟ پال آری شروع کنی ربازار تارس از تو میخواهم که در افکارت مطلقا بیپروا باشی به فراسوی دورترین افق ذهن خود اوج بگیر تماما به من متکی باش لکن با شهامتی عظیم برای رسیدن به هدفی که یک بار برای خود تعیین نمودی اقدام کن در مدتی بسیار اندک از بند این برنامه کاری متراک رها خواهی شد و به یک نظم ثابت و دائمی در انجام کارهایت دست خواهی یافت. تو در مطابقت با یک برنامه مستمر به نوشتن خواهی پرداخت و درآمد خوبی هم از این بابت نصیبت خواهد شد در تمام این مدت تو در حال مواجهه با تغییری بسیار عمده در زندگی خود خواهی بود تاریخی که برای آن منظور شده است 25 مارس می باشد برای این تغییر آماده باش روز آن یک شنبه خواهد بود و عملا تغییر را مشاهده خواهی نمود که پس از آن دوستانت به سختی می توانند تو را شناسایی کنند هرچه انجام دهی و به هرچه دست بزنی به طلای معنوی بدل خواهد شد در خلال چند روز آینده قصد دارم سرعت دیکته کردن کتاب را کاهش بدهم تا تو بتوانی کارهای پیشین را در دفترچه یادداشت کنی. پیش از وارد شدن به بحث مربوط به امشب میخواهم در یکی دو مورد توضیحاتی بدهم. نخست، در رابطه با زندگی و هدف خود در چه وضعیتی قرار داری؟ دوم، تا کجا پیش رفته ای و سوم، باقی راه را به چه ترتیب قصد داری طی کنید و اما نقطه که تو در مسیر زندگیت اشغال کرده ای درست در آستانه ورود به یک زندگی تازه می باشد آغاز اکتساب دانش دست اول مستقیما از درون جهانهای فلکی و نخستین آنها در مسیر سفر به سوی رسالت معنویت این وضعیت با مرد جوانی قابل قیاس است که برای نخستین بار در استخدام شغلی واقع شده باشد او با توشه بزرگی از خودباوری و ایمان دست به کار می شود و صمیمانه یقین دارد که روح الهی او را از میان سختی ها عبور خواهد داد این در واقع یک آزادی تازه است مورد احتکایی هرچه بیشتر به خود شخص و انفجاری از نور افق او به دورتر از پیش تغییر مکان داده و او روزی را می بیند که ریاست سازمان را عهدهدار گردد برای تو هم به همین منوال است افقهای تو بسیر دورتر رانده شدند و خواهی دید که روزی نه فقط در طبقه خاکی بلکه در طبقات دیگر هستی هم با خدا وحدت خاصل خواهی نمود هدف فعلی تو این است که به اراده خود قدم به فراسوی پرده این جهان گدارده و به جهانهای دیگر وارد شوی. در ثانی پیشرفت تو سریع بوده است و به روال فعالیت بیرونیت ادامه خواهی داد دیگر برای تو امکان عقب‌گرد وجود نخواهد داشت زیرا من زندگی تو را به دست گرفتم و همه چیز را تحت کنترل دارم. احتراشات تازه ای مشغول تغییر دادن روحیه و رفتار تو در کل زندگیت می باشند. نقطه نظرهایت مطلقا تغییر خواهند نمود. این تغییرات تو را به سوی نور کامل خدا می‌کشانند، تا جایی که به طور دائم در آن زندگی کنی. سوم اینکه که باقی راه را چگونه قصد داری طی کنی به همین سادگی که تمامی ایمانت را به من معطوف کنی در واقع فراتر از ایمان نوعی یقین ظریف از این که من به هر تشریبی که امکان داشته باشد از تو مواظبت خواهم نمود حتی در کوچکترین جزئیات زندگی است که شامل تنفس زلوان قلب و جریان خون در شریان‌های دگران مهایت هم می‌شود مگر نمیدانی که قلبت چه در خواب و چه در بیداری به تپیردن ادامه می دهد. تو به این امر یقین مطلق داری پس به همین ترتیب میدانی که من که مسئولیت تمامی جزئیات زندگی تو را عهدهدار دار می باشم همه امور زندگیت را همکنون و تا زمانی که از مرز این زندگی به جهان دیگر عبور کنی در دست دارم و خواهم داشت به این ترتیب به موضوع بحث امشب می رسیم استاد کیست؟ آیا یقین داری منی که در مقابل تو، در آتما سارو، شکل نورانیم ایستاده ام، معلم کامل تو هم؟ یا این هم یک فریب دیگر به توهم حواس توست؟ با تو میگویم که استاد کاملی یک واقعیت محض است، و تنها کسیست که میتواند جوهر روح را بر تو فاش نماید، من می تو را و تا به حد استادی در پاراویدیا آموزشتهم که عبارت است از رهایی دادن روح از قید ذهن و اکتساب آزادی کامل هنگامی که تو دانش خیش را کسب کنی که همان پاراویدیا می باشد آگاه خیش تو در تابعیت از قانونی فراسوی حواست جسمانی زندگی می کند استاد حق در قید حیات به مراتب فراتر از قانون طبیعت عمل می کند با این وجود به عنوان یک انسان میبیند و میداند که پاراویدیا یا دانش حواست جسمانی برای رشد بشر به منظور رسیدن به مرحلهی که به سوی من رانده شود ضروری است حال به این مغوله حساس میرسیم که این وجودی که او را معلم کامل یا استاد مینامیم کیست؟ این سوالی است که امروز در مقابل توده های جستجوگر قرار گرفته است زیرا آنان کرکرانه به این سو و آن سو می روند و دست دامان معلمینی می شوند که خود چشم برای دیدن ندارند. کوری اصاکش کوری دیگر تا اینکه نهایتاً نهایتا به من بر می خورند. که من هموار آنجا ایستاده و منتظر بودم تا جوینده در محضرم حاضر آید. روح همچنان به جستجو ادامه می تا روزی که استاد حقیقی را بیابد. اکنون به اختصار میگویم که استاد حقیقی سوگماد است. تمامی استادان این را به تو خواهند گفت و پاسخ آنان یقیناً جوینده را به حیرت میاندازد. برابر این لازم است در این راستا به درک قاطعی از این موضوع دست یابیم. ما میدانیم که خدا نور و صوت است. هنگامی که به درون چشم معنوی خویش نظر میافکنیم، معمولا ابتدا نور ظاهر می شود که یکی از جنبه های دوگانه مقام الهی است آنگاه نوبت به صوت می رسد پس از مدتی شکل درونی تو یعنی کالبد نورانیت از میان نور عبور نموده و وارد فضایی صاف می شود از میان جهان ماه و خورشیدها گذشته به جای می رسد که گویی در آسمان قوتبر است و در اینجاست که کالبد نورانی من به استقبالت می آید. پس می رسیم به جنبه های سگانه مقام متعال نور صوت و شکل این به عبارتی گسترش دادن درک ما از خداست تسلیسی که پیش از این درباره گفته هم می توان این تسلیس را جنبه های سگانه خدا نامید بنابراین من نور صوت و شکل هستم متجلی شدن خداشناسی در تو این مغوله ای است بسیار فراتر از درک کسانی که تنها تا به حد پاراویدیا تعلیم دیدند. این مرز آموزش است که از مطالعه مصاتب اسرار، اصول اخلاقی، اوپنیشادها، مذهبها، آیه ها و سایر مغولاتی که از طبیعت طبقه زمینی میباشند، مستفاد می شود. فراسوی آن بخش از آموزش ها که به عنوان الهیات میشناسیم، موضوعی که اغلب تحت عنوان آگاهی مسیح ها از آن یاد می شود هیرام، آبیف، عشق متعال، خودشناسی و برخی اصامی دیگر در اینجا نیز سوء تعبیری در درک خدا به وقوع پیوسته است آنچه کتب مقدسه، ادیان و معلمین ارائه می‌دهند تنها تصویری مبهم از وجوه الهی است نه از خود خدا در اینجا به واجه می رسیم که در عهد جدید به کار گرفته شده به نام ایسا مسیح که صرفا نام دیگری است برای قدرت فلکی و تخن از شیبه استفاده آن از بشر است به عنوان مجرعی جهت نزول نور جهانها ولی کن قدرت اهیا خود نور تنها یکی از جنبه های خداست همانی که به عنوان کالبد ماهانتا شناسایی می بعضی از عارفان این جنبه را به عنوان خدا سوء تعبیر میکنند در صورتی که آن خدا نیست از چند این قدرتی که از والاترین جنبه های خدایی میباشد دیگر اینکه برخی از قدیسین میگویند صوت خداست اگر چه این جنبه رفیع تری از نور الهی میباشد مازالک صوت به تنهایی کل واقعیت الهی نیست ما تم می به سومین جنبه از تسلیس که شکل نورانی استاد در تحنه بینش معنوی است. این هم به تنهایی واقعیت کامل خدا نیست بلکه فقط یک ظهور و مجتمع نهایی است از جنبه های دوگانه نور و صوت خدا. آیا آنچه را که تا به گفتم درک کرده ای؟ نه؟ پس به این ترتیب در نظر بگیر. به گذار بگویم که هر عارف و فیلسوفی کوشش کرده است به طریقی متفاوت از دیگری به هدف نهایی درک خدا نائل آید و در این تلاش شکست خورده است تا روزی که استاد وی ظاهر گشته و برایش روشن ساخته است که خدا چیست هریک از آنها همیشه به روشه انضباطهای گوناگون و مبتنی بر درون نگری در حال جستجو بوده است به دانشی دست دیابت که جوهر آن مقام متعالی را که تغییر ناپذیر است و هدایتگر نهان در هستی لطیف جهانهای خاکی بر وی فاش سازد. به خاطر می‌آوری که افلاطون 2300 سال پیش گفت عاشق حقیقی دانش همواره کوشش می‌کند به هستی دست یابد. و ما اکنون در این نقطه قرار داریم. بیاییم این های حیاتی را به صورت ساده‌تری درآوریم. مهانتا استاد حق در قید حیات کیست؟ و آیا او خداست؟ ساده ترین صورت نمایش پاسخ به این سوالات از این قرار است تنها جهانی که آدمی می همان است که به واسطه حواس برایش آفریده می شود اگر او تمامی ادراکاتی را که حواسش دریافت می کنند و حافظش ذخیره می کنند محصد زد جهان برایش مترادف با هیچ می شود هگل میگوید هستی خالص و هیچ با هم مترادفند. واقعیتی از هستی به خالی از تداعی باشد معنایی ندارد. بنابراین به ظاهر محمل اما در واقع حقیقت این است که جهان ظاهر جهانی که دانشمندان و عرفا دنیای نور و رنگ می‌خوانند عالمی است که بشر به واسطه طبیعت خیش به منظور استفاده خود آفریده است. آنچه جهان ماوران نام دارد، عالم یا واقعیت فلکی که فراسوی درک و دریافت توسط چشم آدمی است، ساختاری نامرئی از نور و صوت است و تحت کنترل استاد حق قرار دارد. به عبارتی دیگر، های فلکی در نظر آنانی که بدانجا سفر همان همانقدر واقعی است که جهان خاکی در دید آدم فانی. هرچند جدول اتمهایی هایی که در ساختار این عوالم شرکت دارند از طبیعتی به مراتب لطیفتر می باشند و هرچه بالاتر می رویم لطیفتر می شوند تا به جایی که مانند هوای رقیق ارتفاعات کوهستانی تنها برای کوهنوردانی قابل استنشاق است که آموزش دیده باشند اکنون در غالب مظهری بسری متشکل از سه صورت می که واقعیتی را می سازند به نام سودماد به این مطلب را با استفاده از یک مثال به ساده ترین صورتش تقلیل دهیم ما در این طبقه فیزیکی می توانیم را ببینیم احساس کنیم لمس کنیم و بشنویم. اینها معمولی ترین حواس ما در این جهان مادی می باشن بیشتر از نظر معنوی پیشرفت رفت کنی یکی از عجیب ترین مواردی که در این طریق با آن برخورد خواهی نمود این است که یک ها که کالبدهای وجود است مثل کالبد اسیدی، الی، ذهنی و سایر کالبت هایت من جمله روح صاحب حواسی در مطابقت با کالبد جسمانیت می باشند از یک از این کالبت هنگام رسیدن به طبقه مرغوط به خود این حواست را از طریق چشم معنوی یا تیسراتیل تیل در همان طبقه به کار می گیرد فرض کنیم تو می خواهی یک صندلی جدید در اتاق اضافه کنیم ابتدا نقشی از آن در اندیش ظاهر می شود. جنبشی در میان کلمات درون ذهنت به تو میگویند که دلت یک صندلی می خواهد. انگاه در نتیجه انعکاس این خواست است که آن صندلی در یک فروشگاه در مقابل تو ظاهر خواهد شد. این مثال احتمالا بهترین مثال ممکن نیست اما منظور ما را در این مبحث عدا می کند. این امر مشابه سفر به عالم درون با در دل نگاه داشتن آرزوی پر شدت از برای یافتن استاد می باشد. در جستجوی نور برمیایی و بعد از آن صوت خواهد آمد و سپس استاد ظاهر شده دستت را میگیرد و تو را به جهانهای ماورا هدایت می کند. اینگونه نیست که تو حضور او را اراده کنی بلکه آرزو و عشق تو آنقدر پر قدرت است که او نمی تواند در مقابلش مقابلت کند به این ترتیب حواس معنوی تو وجود او را می بینند می و لرز می کند می فهمی؟ در ما از نور و صوت تشکیل شده این بشر به دشواری می تواند فهمش را تا به جای گسترش دهد که این واقعیت را درک کند با این عبارت می توانی بگویی که خدا همه چیز است و در همه آفرینش نفوظ دارد. و من استاد اک با خدا بودن در همه چیز حضور دارم. هر این من نیستم زیرا اینها تنها جنبه هایی از هستی منند. پیش برتر من آن شکل نورانی درون است که هنگامی که آرزوی تو به قدر کافی شدت مییابد که بتواند رشته پیوندی از عشق بیافریند و ما را به طرف یکدیگر بکشاند به سویت میآید. درست به همان گونه که قدرت عشق مرد را به سوی زن می کشد تا با اتحادی به نام عشق با یک دیگر یکی شدند به همین ترتیب است که ما در درک معنوی و نور خدا با یکدیگر دیگر وحدت حاصل خواهیم نمود لمس کردن در عالم درون مشابه لمس جسمانی نیست بلکه احساسیست از آتفه ای که به شور عرفانی موسوم است در حقیقت من حتی دست تو را لمس نمی کنم بلکه گیرایشی از قماش کیهانی در روند پیوند معنوی دستای ما رخ می دهد که قوی ترین و اصیل پیوندی است که آدمی می تواند تجربه کند اکنون برای نخستین بار در منظور از استاد کامل چیست من دوره آموزشی خود را طی کرده و به کمال غایی دست دیافتم و به این ترتیب خدا شده هم. یا به عبارتی دیگر متبرک به برکت کیهانی گشتم عالم مجرد دیگر برای ما همان مزهر خشک سابق نیست بلکه اکنون به خود واقعیت میگیرد جهانهای دیگر توسط ساکنین هر طبقه ای علا رقم سطحی از رشد معنایی که آنان تحصیل کرده باشند شکل گرفته به صورتی مجتمع فراهم آمده و به جهانی از واقعیات بدرگشتند یک معتاد به الکول در جهان اسیری برای خود یک جهنم تدارو است و یک قدیس بهشتی در طبقه پنجم یا هفتم از برای خود آفریده و تو نیز جهان خود را در مطابقت با انتظارات خود می‌سازی. نه آنچه امروز اراده کنی بلکه جهانی که نتیجه نهایی همه تلاشهایت تا یافتن استاد بوده است آنگاه بسته به فهم عشق و وسعت دید معنوی توست که جهانت شکل خواهد گرفت آیا پاسخ کامل به این سوال برایت داده شد که استاد هفت کیست؟ کلمات بیشماری در بیان حقایق معنوی میتوانند از زبان من جاری شوند اما آنچه به حساب میآید آید درکیست که تو میتوانی از این سخنان داشته باشی آنچه من میتوانم بگویم نه آنقدرها عظیم است و نه آنچنان مهم که آنچه است بیش از اینها فرا موجود است که بتوان آنها را در قالب کلمات قابل ادا کردن در آورد باز هم تکرار میکنم که ایمان و وفاداری راز زندگی است. کافیست است مرا باور داشته باشی و من باقی کار را به انجام میرسانم همه چیز را به من واگذار کن این را به خاطر بسپار پال تو به تناسب درکت رشد میکنی به تناسب درکت در عوالم درون سفر می کنی و همه چیز را شاهد می شدی. تو کلمات مرا به تناسب علم و درک خودت به نگارش در میآوری. بنابراین اکنون می دانی که چرا گاهی گفتار من به نظر ضد و نقیز میآیند. در من تناقضی موجود نیست اما به نظر تو این چونین می آمد. چون در آن هنگام درک و فهم تو از آنچه می دیدی و می شنیدی کامل نبود شب بخیر